و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله الالمین نبلغاسم المصطفى محمد صلی اللہ و علیه وآلہ وسلم سيما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسكري المهدی، ارواح و نال مقدم الفدا ولعنة الله علی اعدائهم اجمعین من العن إلی قیام يوم الدین خوب بنا شد این چند هفتهای که شبهای چهارشنبه بعد از نماز اشا ما در این مکان مقدس و در این امامزاده در خدمت نمازگذاران و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام هستیم یه مباحثی رو عرض کنم راجب به نماز که الان یکی دو هفته است تو این موضوع صحبت می کنم که خلاصه یکی از ارکان مهم دینه یکی از نشانه های مهم ایمانه. که حالا هفته‌های گذشته یه مباحثی رو عرض کردم امشب عرض می‌کنم که یکی از چیزهایی که در قرآن نسبت به نماز خیلی سفارش شده محافظت از نمازه اولا چند بار تو قرآن آمده که یا ایوه اللذین آمنون حافظو علی این, این چند بار تو قرآن خدا تاکید کرده که نمازهاتون رو محافظت کنین همونطوری که آدم از خیلی تعبیر قشنگی ها همونطوری که آدم از مالش مراقبت میکنه همون که آدم از زن و بچهش مراقبت میکنه که اینا صدمه نخورند الان ما مثلا پولمونو چقدر محافظت میکنیم که از بین نرزایه نشه ماشینمونو زندگیمونو چقدر محافظت میکنیم صدمه آسیب نبینه خدا میفرماید که از نمازه هاتونم مثل مالتون مثل زن و بچهتون محافظت کنین حافظو، و الاسل نذارید اینا آسیب ببینند صدمه ببینند یا مثلا یکی از ویژگی های انسان های مومن رو گفته اللذین هم صلواتهم یحافظون مومن کیه؟ میگه مومن کسیه که از نمازش محافظت میکنه همونطور که از مالش محافظت میکنه همونطوری که از آبروش محافظت میکند از زن و بچهش محافظت میکنه مومن از نمازشم محافظت میکنه که این نماز صدمه نبینه آسیب نبیند در مقابل اینا یک گروهی رو خدا تو قرآن اشاره بهش کرده که اینا نماز رو زایه میکنند مثل که شما مال و شش... رو زایه میکنیم به این توجه میفرماید می عذا و صلاح و طبع و شهوات میگه اینا نمازه هاشون رو زایه میکنند میرن دنبال بیبندوباری فساد هر جا نماز زایشه گناه زیاد میشه گناه کجا زیاد میشه اونجا که نماز ضایعه شده یا به یه معنا از نماز چی نشده محافظت نشده نماز رو حفظش نکردن این نماز آسیب دید نماز که آسیب ببینه بیبندوباری زیاد میشه شهوات زیاد میشه گناه زیاد میشه به این توجه ببیند میده به خاطر این خدا تو قرآن گفته فویلون للمسلین این با این توضیحاتی که دادم میگه وای با حال اونایی که نماز میخوانند <تصفح> گو... وای با حال نمازگزاران اینا چه نماز یعنی اونایی که نماز حفظش نمیکنند زایش میکنند این محافظ نمازشون نیستند از نماز مراقبت نمیکنند این نماز ضایع میشه خدا اینطوری نیست که بگه هر کی نماز میخونه محبوبه نه نه اینطوری نیست این من بعضی رو تو ها گفتم بالا شاید بعضی رفقا شنیدن اصلا اگه شما نگاه کنین تو قرآن ویل هر جا به کار میره بوی کفر میده. بنت مؤمن نماز زایه نمی کنه. اما اونایی که ایمان درستابی ندارن اونا نماز زایه میکنن چون ایمان صحیحی ندارند از نمازشون محافظت نمیکنند اصلا خیلی جاهایی که خدا میگه ویل للمکذبین ویلون لل کافرین تو قرآن هست ویلون لل کافرین من عذاب شدید خیلی جای که اصلا ویلو به کیا گفته به کفار گفته مکذبین گفته اگر هم یه جا حالا به سراحت به کفار نگفته اون عمل بوی کفر میده مثلا گفته ویل لل متففین وای با حال اونایی که کم فروشی میکنند حق و ناس را نمیکنن نمیکنند مدیون همه میکنند یه خود جلوتر میفرماید که الا یزنو انهم لمبعوسون سبک زیبای قرآن رو ببینید اول میگد که وای با حال اونایی که کم فروشی میکنند یه دو سایه جلوتر میگه اینا احتمال هم نمیدن قیامتی باشد باید یه بوی کف میده این عمل یعنی کسی کم فروشی میکنه که خاطرش جمعه دیگه شب اول قبری نیست بلیه جرعت این که اگه ای شما بگید شب اول قبر جرعت کم فروشی نداری کسی میتونه کم فروشی کنه که یقین داشته باشد قیامتی نیست حساب کتابی نیست میگه اینا احتمال هم نمیدن روز قیامتی باشد یه روز اینا مبعوث بشن در گروه اعمالشون باشند یه مثالی بزنم نسل جوان هم نشستن نوجونا هم نشستن میخوام این جا بیفته ها که این ویل خیلی تونده الان وزیر اطلاعات آقا امشب به من زنگ بزنه بگه من وزیر اطلاعاتم وای به حالت <تصفح> اصلا من سکته میکنم میگه صبح حالیت میکنم ای بابا اصلا من شد صبحو دیگه نبینم من <تصفح> میکنم هی میگم آقا من اصلا من کجا وزیر اطلاعات کجا زنگ زده گفته وای به حالت حالا صبح بهت میفهمونم خدا بگه وای به حالت اصلا وزیر اطلاعات کیه این خدا میگه وای به حال اونایی که نماز میخوانند از کسی یه خورده بفهمه همونجا استقلبی میکنه خدا بگه که وای به حال اونایی که نماز رو زایع میکنن ویلون للسلن من یه بحثی که تو قرآن مطرحه چیه آون حفاظت از نمازه که نماز ضایعه نشه صدمه نبینت آسیب نبیند بعد از این هفته یه بحثی شروع میکنم که نماز مطلوب چ از چی حفظش کنیم؟ نماز مطلوب از نظر قرآن و روایات چه ویژگی هایی دا باید داشته باشه؟ من چارده تا نوشتم ابتاله منحصر به این چارده تا هم نیست یه کتابی دارد شهید ثانی به نام الفیه بس سخت میشه و... <تصفيق> یه کتابی داره شهید ثانی شهید به نام الفیه تو اینجا میگه که نماز هزار حد واجب داره و گذار بعد از این هزار حد نمازشو رو حفظ کند که از این حدود و سقور خوره هزار تا ما چارده تا میخوایم بگیم از اون هزار تایی که او گفته یک کتاب دیگه داره من اونو ندیدم ها ولی تو همون کتاب میگه تو مقدم میگه من یک کتاب دیگه نفلیه تونجا سه هزار حد برای نماز شمردم که مستحب به رعایت بشه که میشه چهار هزار تا. تا هزار تا میگه واجبه سه هزار تا میگه چیه استحباب داره که نماز گذار رعایت کنه امام زمان مثلا یه نمازی میخونه چهار هزار حد نماز رو حفظ میکنه شما چند تا شفظ میکنیم به خدا آقای این نمازی که الان ما خوندیم ما چند تاشو حفظ کردیم حالا من از اون تایی که شهیدستانی میگه نماز خوندن خیلی سخته تو احکام دین خدا نظرش اینه که از همه دستورات خدا نماز سخته ماهانه نه ما الان مثلا بگیم که الان ما میخواییم یه مصاحبه کنیم مثلا یه مجری بیاد تو مردم بگه که به نظر شما تو دین اسلام کدوم حکمش از همه سخت داره میگن جهاد مثلا میگن شهادت هر یه چیزی میگه دیگه یه ده میگن جهاد یه ده میگن هجرت یه ده میگن روزه تابستون مثلا هرکس اون یه چیزی بگدی یه ده که مال پرستن میگن خمس میگن آقا پیرمون در میادیم پولو بدی یه ده میگن زکات ببینید درجه من همه. اما از خدا بپرسی خدا میگه سخت این دستور من نمازه. انها راجب نماز میگه تو سوره بقره انها لکبیرتون میگه آره قبول دارم این یه دونه سخته میگه این یه دونه سخته لکبیرتون الا علی الخاشعین میگه نادر کسی از عهده نماز بر بیاد مثلا مثل, مثل امیرالمومنین وقت برای این ما نجف میریم و به حضرت امیر چی میگیم اشهد انک قد اقمت الصلاه ما تا اینجا اومدیم میگیم همین رو تو بگیم که تو میتونستی حدود و سقوط نماز رو حفظ کنی ما نمیتونیم ما زایه میکنیم نماز رو هر کی به اندازه خودش نماز رو چیکار میکنه زایه میکند تازه همین حضرت امیر میگن وقت نماز میشد بدنش مثل بید میلرزید رنگش مثل گچ میشد می رنگش میپرید اون آدمی که از هیچکی نمیترسید ها <تصفيق> اون آدمی که اگه میگفت همه عرب به من حمله کنن من فرار نمی کنم پشت به اینا نمی کنم خم به عبرونه میارم اون موقع نماز رنگش میپرید بدنش میلرزید بعد میگفتن چیه موقع وضوع میگفتن چرا شما اینجوری شدید چرا رنگتون پریده میگفت موقع عدای نمازه نمیدونم من از اخته بر میام بر نمیام اون می ترسید که میتونه حدود و صغور نماز رو حفظ کنه ان نهاچی این یادتون نره لکبیرتون خدا میگه من قبول دارم این یه دونه حکم من سخته من واقعا مشکله. این این نیست که با این چقدر راس میشیم تبه چون میکنید این نیست زوهری گفت اقتدا کردم به امام زین العابدین گفت رفتم دیدم حضرت میخواد نماز مغرب بخونه اجازه گرفتم میشه من اختدا کنم گفت مانعی ندارد نماز رو که تموم شد حضرت روشو به من کرد فرمودن چقدر از این نماز رو با حضور قلب خوندی زهری اون چی گفته بچم زهری گفتش که فکر میکنم یه دونه رکوع رو با حضور قلب رفتم این از این حرف هیچ هیچیش به حضور قلب نبوده. جو روش نشود بگه هیچی بین آقا خب اون یرمو کوره به حضور قلب گفت فکر میکنم گفت یابن رسول الله شاید یه دونه رکوع رو با حضور قلب, رو قلب رفتو. حضرت نمازت هم اندازش قبول شد. بقیش به درد نمیخوره بعد گفت از پیغمبر نشنیدی لا صلات الا به حضور القلب. نماز نماز نیست مگر حضور قلب درش باشه. همین آقا کمر هر پهلوونی رو میش تو عرفان. خدا جدایم. همین یه دونه جمله کمر بزرگان عرفان رو میشکنه که این نماز به حضور قلب باشد علامه مطهری یه سفر داره توی این کتاب گفتارهای معنویش نگاه کنید میگه من یه سفر میرفتم کربلا نجف اومدم پیش استادمون علامه طباطبایی برای خدافیزی گفتن من دارم میرم کربلا نجف گفت اونجا رفتی مرحوم سید حاشم حداد رو برو ببین گفت حیف آدم بره تا اونجا و این مرد خدا رو نبیند این شاگرد کی بود؟ آستالی آقای قاضی اللامه هم شاگرد آستالی آقای قاضی بود اللامه هم از شاگردان آستالی آقای قاضی بود سید هاشم حداد هم از شاگرده آهنگر بود ابتده عمامه, عمامه داشت عمامه داشت عمامه مشکی هم داشت ولی شغلش آهنگری بود به خاطر شما حداد مجتهد بود اصلا آسد علی آقای قاضی کسی رو به شاگردی قبول نمی کرد در ارفان مگر اینکه مجتهد باشه مثلا من و شما می رفتیم قبول نمی کرد می گفت شما اول برو درس بخون بفهم بعد بیا حالا ببین ما چیکار با تو میخوایم بکنیم تمام شاگردانش مجتهد بودند مثلا یکیش همین آیت الله عظمی کی بجد یکی همین علامه طباطبایی یکی همین اسد هاشم حداد حد که این حالا آهنگر بود اما مجتهد بود خیلی زمین است علامه متحری میگه اومدمو تو کربلا پرسه جو میکردم، عاصد هاشم حداد رو پیدا کنم. هی بین گفتم آقا شما یه آدمی به نام حداد می‌شناسید؟ تو بازار گرمم بود، تابستونم گفت من افتادم که درسات تعطیل بود. گرم دیگه کربلا. گفتم یه آقای اومد، یه عمامه کوچیکی رو سرشه، پیرمردی گفت شما دنبال عاصد هاشم حداد می‌گردید؟ حالا ما از اون نپرسیده بودیم ما از دیگران پرسیده گفتم بله گفت تشریف بیارین برد خونه دیدم خودشه <تصفح> دیدم خود آسده هاشم حد داده من اومدم بعد از نماز ظهر از یه استراحتی کنم تو این خونکیه خونه دیدم تو در به در تو کربلا دنبال من میگردی دیدم انصاف نی ما بخوابیم تو اینجوری اومدم آوردم ات خونه این من آدم نیرومندی بوده قوی بوده اینجاست همینجا همین از همونجا یه چشمه به چوب می‌کنه آی داد بعد این عملو حالا یه جملاتی علامه می‌فرماد تو گفتارهای معنوی ببینید اما یه جمله ژینه که موقع خدافضی گفتم منو علامه تبا تبایی فرستاده گفته که حتما بریم شما رو ببینیم آقا فرمودن که تو نماز سید هاشم حداد. حد آقای متقری تو نماز شما چیکار می‌کنی؟ گفتم من اینو که فلاسفه میگن گفتم دفع خواطر میکنم دفع خواطر. یعنی تا حواسم میخواد پرت بره تو بازار من برش می‌گردونم به نماز. تا مثلا میخواد حواسم پرت به کتاب درس صبح حواسم پرت شه به اینکه عصری میخوام برم سر کلاس چی بگم حواسم پرت شه که ماشینمو خوب جایی گذاشتم یعنی من اینا رو دف میکنم نمیذارم که اینا بیاد ذهن من کوی یه نگاهی به من که گفت پس کی با خدا حرف میزنی <تصفح> گفت پس تو همش که میجنگی که گوی رو رد کنی اونو رد کنی کی با خدا خلوت میکنی های ما اینه تازه اونا که خوب میخوان مثل آقای متقری میخوان به قول ایشون چه میکنن آقا دفع خواطر میکنن <تصفيق> تا ذهنش میخواد بره که من ماشینمو جای خوبی گذاشتم یا میگه نه آقا الان وقت نمازه ولش کن ولش کن آقا دوباره بعد از اون میگه که آقا حالا بعد از نماز منبر از کجا شروع کنم میگه آقا ول کن حالا وقت این چیزانی تا اینه میگه آقا شب رفتیم شام چی بخوریم میگه ولش کن شامو ولش کن تا میگه آقاش دیگه پر که این با خدا حرف میزنی حالا تا حالا خوبا ما که دفع خواترم نمی کنیم من هم من خودم که دفع خواترم نمی کنم تو همون خاطرمون هستی میدم از سلام علیکم و رحمت الله و برکاته حالا اونایی که دفع خواتر می کنند, کی با خدا حرف می زنند همون موضوع قلب حالا ما چارده تا نوشتم همه که یه شب نمیتونم بگم ها حالا امشب یه مقدمم یه خودم مقدمم هم طولانی شد یکی دستشو امشب میگم یکی از اینا اخلاصه همونجا که میگه فویلون للمسلین وای با حال اونهایی که نماز میخوانن میگه اللذین هم یراون اللذین کدوم نماز رو تو میگی وای با... میگه کسی نماز بخواند و بخواد ریا کنه به روخ... یکی قراعتش رو مثلا میخواد به روخ مردم بکشد که من قراعت صحیحی دارم یه جا من نماز اختدا کردم و خونه بود یک کت شلواری رو گذاشتن جلو گفتن که روحانی نیامده اینم رفت و مهراب این نماز رو بلند میخونه اما قراعت خیلی زیبایی داشته اما بلند میخوند هر چی ما بهش اشاره کردیم بابا آه آهسته بدینم نگوش نمیده تو نماز. تموم شد رفتم بودم آقا چه گفت نه میخوام اینا بدونن که من قرائاتم درسته. گفتم آقا بابا ویل کن آقا تو نمازو باطل میکنی که مردم بگن قرائتش درست می این حاضر نمازشو باطل کنه ولی مردم بگن چه قرائت نیکویی دارد بگن ماشاءالله فلانی ده تا روحانی رو تو جیبش میذاشت. چه عجب قرائاتی عجب صوتی این ریا شد من نماز یه جوری بخونم که مردم بگن که این از روحانی بهتر میخونه تمام شد این نماز زایه شد بگم من یه جوری بخونم مردم بگن خدا کنه آقا هر شب این بیاد بخونه خیلی از روحانی بهتر میخونه این دیگه نماز داغون کرد نیتش این باشه نیتش این باشه که من یه جوری من یه جوری اینجا منبر برم که مردم بگن خدا کنه آقا این همیشه کت شلواریا بیاد منبر روحانیا که این آقا دیگه نیتش خرابه جواب این از این منبر هیچ بهره اینه نمیبرد چون نیتش خراب شد ببینید الاعمال بالنیات قرآن بخونه ابراهیم وقتی میخواست نماز بخونه چی میگفت ان صلاتي و نسکی و محیای و مماتی للاه رب العالمین چقدر این سخته این چقدر سخته است این گفتنه بله ممکنه من میخوان بعضی بخوان قبل از اینکه تکفیر بگن اینو میگن همینو گفتن دیگه برای خدا شد میگه آقا گفتم که اینه و نسکی همون گفتی درمون شد جو. اگه به این سادگی بود که خب ما میگیم اینه سلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین نماز میخونم برا خدا ایکی از بزرگان حضرت آیت الله الاظزمای کلباسی بود این شاگرد آشیخ مرتزای انصاری بود از شاگردان مبرزه شیخ مرتزای انصاری مریض بود این رفت ایادتش شاگرد آمد ایادت استاد مغرب شد با آقای انساری گفتن که عاشق مرتزای انساری گفتن که وایست جلو نماز اقامش مغرب شده گفت من احتیاط داره چون مریض بودم این مدت و اینا کلباسی وایسته جلو شاگرد خودش این تقریبا معناشین این است که این بعد از منم جانشین منه اینا خیلی معنی دارد آقا تو حوزه های علمیه این تقریبا معناشین این است که منم مردمم کلباسی جای منه چون مثلا میرزا شیرازی بود کی بود کی بود همه بزرگان شاگردانیشون بودن گفت کلباسی وایسته جلو حل دادن کلباسی رو گذاشتن جلو, جلو. شونم خود شیخ مرتضی انصار هم آماده شد که به شاگردش اقدا کنه این کجا دارم میگم داستان راستان این کجا دارم میگم داستان راستان علامه متحری آماده شد که اینم گفت الله اکبر الله اکبر ااشد الله ال اشد الله به تکبیر که رسید فرار کرد رفت جون... اصلا فرار کرد رفت جون... هی گفتن آقا گفت نه نه من کار من نی بعد خودش گفتن آقا فرار کردی ر... گفت دیدم که من مثل شیخ مرتضی انصاری به من اقتدا کنه من نیتم خراب میشه میگم که ما کی هستیم که شیخ به ما اقتدا کنه ما دیگه به کجا رسیدیم که گفت دیدم نیتم خرابه خونه خونم برای خداست اونجا برای جانشینیه <تصفيق> اونجا میگن بوی جانشینی میاد و آخرش هم جانشین انصاری وقتی آمدن از آیت الله شیخ مرتزای انصاری از دونره آمدن بیشه ایشون بر مبنای همین چیزهایی که تایید میکرد ایشون گفت من عالمم شک نکنید تو شاگردان شیخ مرتزای انصاری من از همه عالمم اما میرزای شیرازی زمانشناستره ریاست به او میخوره به من نمیخوره من, من زمان خوب نمیشناسم مردم رو به داد و میرزای شیرازی رئیس شد این چه اخلاصیه این چه اخلاصیه که آقا ریاست شیرات در خونت بیاد شما بگی که آقا من میدم به میرزای شیرازی چون اون زمانشناستری ولی خیلی مهمه که مرج، زمان رو بشناسد حالا شما مرجعی میشناسین آقا به اندازه حاصدالی آقا زمان رو بشناسد ما اصلا نزدیکش هم میشناسین ما, ما نمیشناسیم به اندازه رهبر محظم انقلاب اشراف به زمان داشته باشه آمریکا رو بشناسه اروپا رو بشناسد مکر اینا رو بفهمد وضعیت مملکت رو بشناسد نمی. زمانشناسی خیلی مهمه همش که فقه نیست مرحوم آیات الله کلباسی گفت شک نکنین اعلم منم بخواستم به مخیرتونم نیاد که من در فقه اعلمم ولی مرزایی شیرازی، بعدم مرزای اون فتفای تنباکو رو داد انگلیس رو فلج کرد اون فتفای تنباکو که انگلیس ها شدن این رو راضی شیرازی داد اسلحه گرفت رفت به جنگ انگلیس ها تو عراق همین میرزای شیرازی با مسلحانه میجنگید با عراق با انگلیس در همین عراق چرا چون زمان رو میشناد حالا قراز است هست ان سلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمی اما میدونید چی به اخلاست دامه میزند؟ من من ریا رو نشونه هاشو بگم دیگه مثلا شما اگه بخواید تو خونه نماز بخونی یه جور میخونی اما اینجا بخوای بخونی چربش میکنی به درد خراب شد خونه ایشکی نیست دیگه یه اتاق خالی اونجا دیگه اذان و اقامه نمیگی مهرو میندازی باز این پون رو پرت میکنن مثل شیریا یا خط بعد میگی الله اکبر اذان اقامه چی شد میگه آقا واجب که نیست ولش کن آقا اما اگه اینجا بخواد به خونه خب این همه آدم داره از آن میگه یه خود جلو میره یه خود عقب میاد میگه اینجا اقلا 20 نفر میبینه سی گیر آدمه اونجا کی میبینه خب خراب شد دیگه این خراب شد خدا میگه فویل للمسلین وای به حال اونایی که نماز میخوانند الیذین هم یراون اونایی که همش میخوان توجه مردمو جلب کنن مثلا یه شب بالا یه تو سخنور این این رو زدم یه شب برادر خانومش مهمونشون نماز شب هم میخونه میگه امشب اینا هستن یه چیز گیرمون میاد نصف شب بلند میشه حالا اونا هم هی صبح میگن چی بود هی سر صدا میگن هاجقو نماز میگه هاجقو نماز شب میگه میخونه میگه از جوانیم میخونم حالا الانم میگه الان که دیگه آمون لب گوره من یه الف بچه بودم تو جبه نماز شب میخوندم الان که پا من دیگه سرازیریه الان نخونم فردا که برادر خانومش میره میگه الحمدلله اینا رفتن سیر میخوابین <laughs> این خرابه دیگه این بعضش خرابه کدام فامیلشو ببیند نمازشو اول وقت خوند. اما اونا که برن بگه الحمدلله راحتیم چهارم خوندیم کسی بیند. این دیگه خرابه دیگه بعضی اینجوری دوستانم گای هستن مثلا پیک که با ما میاد آقا از 11 میگه وقت نماز میگم آقا بابا میگم من الان آخه بنیم میگه آقا تا آجا آقا وضو رو بگیریم اول وقت حیف آجا آقا اما خونه شون بعد از ظهر میخونه خب میگم آقا مگه تو پیک تو یازده از 11 گیر میدی میگه بریم نماز اینجا چهار میخونه این خرابه حال اخلاص خیلی مهمه الامالو به نیات عمل که عرضش ندارد نیت ارزش دارد روح عمل نی گاهی آدم آقا باید ترک کنه نام عملو برای که نیتش درست نیست این گاهی آدم باید عملو ترک کنه مثلا باید... حالا بعضا اینجوری هن. یه شب مثلا مهمون داره اون شب نماز شب بلند نمیشه میگه الان بلند شب نیت هم نیت خوبی نیه این میخوام خودمو به اینا نشون بدم امشب عمل رو ترک کرد برای خدا <تصفح> گاهی آقا ترک عمل برای خداست. میگه چون من الان پاشم بوی تر... ما شهید غلاملی که رفیق ما بود شهید هم شد مده بود این اینجوری بود مثلا اگه چهار پنج تا مده قدر بودن مثل خودش مثلا آقای انسانی اومده آقای عرضی اومده بود اینا هم سطح های شهید بودن در اصل خودش دیگه دیگه نمیخوند <تصفح> اون روز دیگه ن میگو نمیخوایم که پوز بدیم اینا هستم معیزم گرم میکنم اصلا هر کاری میکردی نمیخون بعد من یه روز بیلون گفتم آلا تو بیتم شما گفت من کشتی نمیگیرم فلانی گفت من کشتی نمیگیرم کسی هم ضربه فندی نمیگرم من بخوام بود دست او بخونم او بخواد اون گرم کرده من میگم دیگه من به اندازه اون باید گرم کنم دیگه آقا دیگه میشه کش دیگه نیت ها خراب میشه گفت وقت هیچکی نباشه من میخونم هر وقت باشن اینا میخونن من ایسم... چقدر مندی من دی دیدم آقای انسانی قسمش میداد میگو قلام دو بیت میگو آقا دیگه همه فیزشون رو بردن دیگه ما هم بخونیم اینا رو میگن اونی که باید بشه شده دیگه ما این مجلس گرم بشه شد دیگه میره تو کشتی چمون <تصحنت> میکن ببین تام وقتیش نبود خلع بود میومد میگفت بعد اون روزایی که مهمون داشته چیکار چگاه میرد چایی میداد میگوه الان اینجا خلاهه گوه کی چایی دیگه نمیده نمی... گایی من مثلا قلامدر زیار دادم قم پخش میکرد تو حیت میگوه اینو اشکی بلند نمیشه بکنه گای دیگ میشست گایی زرف میشست میگوه همش نوکریه فقط خوندن نوکری نیه اینجور که اونا که کفش جفت میکنن نوکر اماموسه نیستن اونا که میخونن نوکر اماموسه نیستن دقیقای اونا خالص هستن چون تو اونا ریا و نیست چون تو کفش جفت کردن که دیگه خودنمایی نماینی یکی کفش واکس میزنه <تصحنت> خدا رحمت کنه شهید تو. میگن شبا میومد بوتینای رزمنده ها رو واکس میزد میگفت خدا این برا خداست کسی هم نمیبینه اسمم در نمی نیت خیلی مهمه ال اعمالو به نیات به خاطر این انا قرآن میفرماید و نسوکی و محیای و مماتی لله رب بالعالمی آدم نیتشو خالص کنه. گای گای خلوصی نه که آدم نماز شب نخونه بگه آقا امشب مهمون زیاد دارم نمیتونم نیتمو درست کنم خود توش میاد فردا که ف... کامیلا میرن فردا شب میگه الحمدلله اینا رفتن حالا بلند میشم اینجا که دلم میخواد نماز شب میخورم این از رفتن اینا خوشحال میشه ببین میگه الحمدلله رفتن دیگه حالا بلند میشم دیگه امشب اگه میموندن امشب هم محروب میشدم خدا پاداش میده باز از این کتاب داستان راستان یه دونه بگم براتون آش حباس قومی آمد مشهد تابستونو بمونه قوم گرم بود اومد مشهد خب آستان قدس زمان شاب متوجه شدن ایشون اومده گفتن که ازش خواهش کنیم تو این مسجد گوهرشاد اقامه نماز هم بکنه هی فرد بگیرد آشقباز قومیه دیگه کنان آقا شما اینجا قوم مشهد هستین اقامه نماز رو تشریف بیارین متقاعدش کردن بیاد اومد ظهر رو خوند رو نخوند ظهر رو عصر رو گفتش من نمیخونم گفتن آقا دیگه عصر رو بخون که از فردا نیا گفت نه من نمیتونم عذر دارم رفتم گفتم اینجا طلبه زیاده یا نفر رو بیارید بخونه من نمیتونم گفتن آقا چرا گفتم من هر روز میمدم اینجا رد میشدم می دو صف سه صف نماز می امرو که من اومدم دیدم تیات هم جمعیت وایستاده گفتم مام کسی شدیم ما ما که اومدیم شلوغ شد اما تا دیروت دو سه سب گفت من لیاقت ندارم که پیش این من چون جمعیت که زیاد میشه خوشحال میشه هم جمعیت که کم میشه ناراحت این کار برای خدا نی. بگم من بیام اینجا ببینم چند هزار نفر جمعیت اومده خوب صحبت کنم بگم دیگه سنگ تموم بذارم بگم اقلن چند هزار اما یه شب میم پنج نفر نشستن بلش کنم یا اصلا بعضکس صحبت نمیکن میگم من برای پ نفر میگه شاننم میاد پایین به من میگه به ت اصلا صحبت چه زار نفر میشنم بعد می به سه نفر صحبت کنم.شان منم با ش ما هم در نظر ما رو دیگه شید نکنین که میذاره میره خدا توش نیست اما اگر آقا من چهار نفر و با سه نفر هیچ فرقی نذاشتم چ میکنبرا خود. آقا این سه نفر یکی هدایت چه اون چهار تا هاش که هدایت نشه به خدا خیلی چهار تا ها بازیه یعنی دو نفر یکیش هدایت میشه از این یه نفر اون یکی هدایت میشه اما اون یعنی چهار هزار نفر هیچ اثری ندارد بعد خدا تأثیر بده یه یعنی وقت اون سه نفر قبول میشه اون چهار تا قبول نمیشه پس چی گفتم؟ ریا که اگه شلوغ باشه سنگ تموم میذاره اگه کسی نباشه سنبلش میکنه, میکنه این کار با. اگه ببینه نه مثلا وزیر اومده مرجه مثلا من الان بیان بیام منبر از تو آیت الله صافی قلپایوانی اومده اون عقب نشسته یه جور دیگه منبر میرم <تصفح> اما یک بیام ببینم نه مثلا آدم ای که ما بشناسیم تو جمعیت نی صدشو میارم پایین یه بار میام میگن می آقا وزیر خارجه اومده آقای ظریف اومدند یه جور دیگه صحبت میکنم یه بار میام اینا آقا خدا توش نی نیت‌ها خرابه این ال اعمال ب... الذين هم یراونا میخواستم دو تا بگم حالا حداقل یه دونه رو گفتیم دیگه اجازه بدید به همین اکتفا کنم چون من یه جلسه دیگه هم تو همین محل دارم حالا تا هفته‌های بعد 14 مورد نوشتم خرد خرد میگم از اون هزار تا حالا ببین نماز خوندن چقدر سخته واقعا نماز خوندن سخته خدا میگه فویل للمصلین وای به حال اونی که نمازشون برا تظاهره همش میخواد قرائتشو به رخ مردم بکشه میخواد دوست داره هر وقت نماز میخونه مردم تعریفش کنن چی بگن بگن فلان یجاب دار خوشحاب حالش نگن یه خوردمش بر میخوره میگه من این همین چودن این نمازو میبینن هیچی نمیگن دوست داره همش ازش تعریف کنن بگن که چه نمازی میخونن نماز نماز فلانی یا بگن حاج آقا چه سعادتی شد ما امشب نمازو پشت سل شما اماش همش دنبال این چیز اینا ریاض خدا توش نیست یا بگن خونه ما بیا یه نماز بخون بذار تبرک بشه در جام نکنه و اش دنبال این چیز داری یه نماز هم بیا خونه ما بخون بذار خونه ما تبرک یک صدای لا اله الا الله توش بپیچه. دنبال این چیز هاست. اما اون میگد نه, نه سلاتی و نسکی و محیای و خیلی سخته آقای اون گفتنش آسانه عمل کردنش خیلی سخته لله رب العالمین دیگه یک کلم هم ذکر مصیبت کنم دلاتون رو ببرم کربلا کنار این امام زاده هم هستیم یه دو سه مرتبه بگیم سلالله فعلی که یا عبا عبدالله دلم رفت این یه چند جمله رو میگم شوالله زاکر اهل بیت میاد فیض میده اما یه دو سه بار بگین امام مسلم اسمتون رو مینویسه جزء وزایران قبرش تو کامل و زیارات که سه بار اینو بگه تو کامل و هست جد حسینت حسین ابن علی او جز زائرین قبرش ثبت میکنه از هر جای دنیا بگه اما حمسان خیلی کریمه ما نتونستیم حالا از دور میگیم سه بار میگیم سلالله فو علیکه یا عبا عبدالله سلالله فو علیکه یا عبا عبدالله سلالله فو علیکه یا عبا عبدالله بلند مرتب شاهی ز صدر زین افتاد دلها بسوزد برای آقایی در موردش هست رو صورت رو گونه راستش عبا عبدالله صورتش به زمین خورد حلال خد دل هل ایمن ایمن ایمن ایمن در مقتل هست از رو از بلند مرتب شاهی ز صدر زین افتاد اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد حواز جور مخالف چون نیل گونگردید عزیز فاطمه از عصب سرنگون, سرنگون گردی این خاک دلها بسوزد برای عبی عبدالله کسی که نبود بیاد سر آقا رو به دامن بگیره, دا دا بگیره. این خاک های داغ دا کربلا رو زیر صورت شریفش جنگ رزن به رزائک تسلیمن اما راوی گفت یه جا دلم به حالش سود دیدم هی میگه یا قوم اسقونی به شربت الماء هی میگه مردم یه خورده به من خورده آب, آب بدیم من, آب من جگرم, جگرم از تشنگی, تشنگی میشتیم هلال گفت من آب آوردم. آوردم همین رسیدم, رسیدم سرازیری سرا گودال. گودال دیدم ملعون دو سرا, سرا از گودال حلال عجله نکن من سیراب بشیدم خوردم دامن عربی, دامن عربی رو سر مقدس رو آ سرا که جدا کردی چرا بدن بدرزه گفت حلال همین که اومدم از گودال خارج شم دیدم یه خانومی با دستش, با دستش به سینش دستش می, می ولدی, ولدی قتلوک و ما عرفوک و من شربل ما منعوک از آب هم مزایقه کردن. کردن کوفیان آفیان. خوش داشتند داشتن. حرمت مهمان کربلا بودن دیو و دد همه سیراب و میمکی خاتم ز قهت آب سلیمان کربلا صلى الله عليكم يا أهل بيت